ای ربنا ارحمنا بر رحمتک یا خدا باشی بحث در باره روایاتی بود که در میته از اجمالا و قسمان در یک تقسیم بندی اینها به اقسام تقسیم میشن من ها روایاتی که درباره اجزاء حیوان حی اگر حیوان زنده باشه درستش پاشا اونجا متعارف بوده دمبه او رو می بریدن آیا این حکم میته داره آیا میشه مثلا در حین بریدن دمبه مثلا رو به قبله باشه بسم الله بگه تأثیری دار یا نه از کردیم که تأثیری نداره و اینها همه میته به حساب نیست و اصل این مطلب از کردیم اجمالا در از ظاهر خود کتاب همیشه هم استفاده کرد مضافن به این که در خود سنت رسول الله همچین مطلبی نقش شده به عنوان ماعبین منحین فا هو نیتون یا ماعبت منحین فا هو نیتون این دوست تعبیر رو اهل سنت هم دارن در روایات ما هم در روایات امیر المؤمنین در کتاب علی هست و بعد روایات ما ساده و امام باخره بنابر قولی حتی به این ایمی متأخرین حضرت موسی جعفر هم نسبت داده شده ولی که به حضرت رضا هم نسبت داده شده این توضیحاتش رو عرض کردم دیگه نیازی تکرار نداره عمده روایتی که ما در ماهنامه شیعه داریم روایتی است که از کاهلی نقش شده عبد الله بن یحیی که مرحوم شیخ رسائل این حدیث رو اولین حدیث باب قرار داده هر این رسم رواسه کاهلی فعلا جو دست ما رسیده یکی در کتاب مرحوم شیخ مرحوم شیخ کلینی است که در سفر سهل بن زیاد داره یکی هم در به اصطلاح مرحوم شیخ طوسی اوورده که چون از مرحوم کلینی نقل کردن که همون اشکال موجوده لکن این روایت در کتاب مرحوم صدوق هم آمده در کتاب صدوق هم از کاهلی نقل کرده از عبدالله نیحیای کاهلی و اون روز ارز کردم که سندش حاضر نیست نگاه که انم سندن صحیحه بلکه اضافه بر صحیح بودن شواهد نشون میده که سند با همین سند مرحوم کلینی یکی ارز کردم مرحوم کلینی این رواد در حقیقت از کتاب بزنتی نقل میکنه. کتاب مرحوم بزنطی ایشو کرده از کاهلی و طریقی هم که صدوق نعر کرده منتقی میشه به بزنتی از کاهلی همین طریقه با این این لفت اینه که اینجا سهل ابن زیاد از بزنطی نعر کرده که صدوق مشکل کرده اما در کتاب مرحوم صدوق مرحوم احمدش محمد ابن عیسای عشعری از بزنطی نعر بذار سند مرحوم شیخ و صدوق صحیحه و روایت مشکل سندی نداره خود کاهدی هم اعز کرده هم به تحبیر عدی گفتن حسنان عدی گفتن مملوح هم این حسنانی می برن در حدیقه در حدیقه مرد در حدیقه کلان یرتقه یلا در حدیقه سارایی یعنی حرفایی که در عدیقه از کتابهای رجالی ما آمده به نظر من این هرزش عدی ندارم به جایی هم نمی نسود یه الهل وضع خود کاهلی و شواهد زندگیش و تعبیر امام مصطفی جعفر سلام الله علیه و علی بن یعقوب ایمنلی الکاهلی او ملک الجنه یا ایمنلی الکاهلی و ایاله او ملک یعنی تو از لحاظ مادی مواظب کاهلی باش احتیاج پیدا نکنه خرج خب زندگی او و ایالش را ادا بکنه من بهش وعده تضمین میکنه البته احتمال داره شاید مرموم عبدالله نیح کاری مدتی هم زندان بودن یا تحت نظر بودن یا جوری بودن که سن آزاد کار بکنن رضا حضرت به علیه نیحکیم فرمود که شما مواظب به او باش خدا در مقابل بهش رو به احتمال هم هست که شهرشون در ایفال حال بوده به اصطلاح مشکلات مالی داشته حضرت به او فرمود. الان در روایت ما الان چندان واضح نمیدونه. مرحوم نجاشی تعبیر کرده که یک تعبیر خوبی داره کان وجهن این در حسن ظاهرا مراد نجاشی از این اواد کان وجهن این حسن است همه رو باید باشه ظاهرشون تصریح هم میکنه و رد قال علی ابن یخدی. این استظهار نجاشی هم خوبه انصافا بالاخره این معلوم میشه که هی از شخصیت هایست که امام اینقدر به او داشتن و به نظر ما خود همین مقدار است به ساقت اصطلاحی که مسئله مهم نیست چیه باشه ظابط باشه و دروغ هم نگه این مقدار بیش از اون مده حضرت عبول حسن سلام مولانه تعبیر ایچار بیش از این مقدار کسی روایت هم هست میباید زیاد داره بزرگان و اجلاع طائفه مثل ابن عمی عمر صفوان بزندی و غیره از اون نرمی کرده صاحبا شواهد سراوانه امسان شواهد رو که نگاه می‌کنه، شواهد فراوانی در بسامت این چخص و لذا این حدیث الان هیچ مشکل نداره اصولا خود کاهلی رحمه الله کتابی بشنصد داده شده و طرق به این کتاب مثلا دو طریق هست یکیش طریق بزندیه یعنی تمام این شواهد با هم جمع می‌کنیم، معلوم میشه که رواد اعتبار داره رواد در کتاب خود کاهلی بوده این کتاب کاهری توسط نسخه بزندی به ما رسیده البته در اختیار مرحوم کلینی نسخه سهله در اختیار مرحوم شیخ توسی شیخ نسخه احمد ابن محمد ابن ایسای عشق لذاب نظر ما این رو خوبه و در متن رو باید برای این که از امام نقل میکنه میفهم در کتاب علی این طوره. و خوب حرفیه هیچ مشکل خاصی نداره ولی دو خوندش و اما روایت معارض که نای اکل و یوس رجوبه ها اون روایت معارض سندش محل اشکاله تو صورا روایات اصراج رو ما توی مسئله به اصلاح روغنیست که توش مو شفته میتقی و زوغنه میتقی خودش ذاتن نجسه اون روغن ذاتن نجس نیست عرزن نجس شده اونی که ما بابه. استسواح داریم که ان شاء خواهد آمد تو مساله هشتم اون در باب استسواح و خورده نشه در روغنیه یا است که مو شخص رو نجس کرده روغن امام میفه برای اسراج خوبه اون وقتی به میته نداره اشتباه نشه این بحثی که ما الان داریم اجزاء میت است دنبه گوساله و هرو زنده است دیگه کردن بریده این محله کلام این به این مطلب پس انصاف قضیه این که این روایت قابل قبول این حکم قابل عبود مشکل خاصی نداره بله میتونم بگم یعنی معلومه مثلا در اینجا اشتباه شده مثلا حالا اشتباه شده, شده؟ یا خدای نکنده قیاس کرده یا خ... مثلا خیال کرده بله میدونم ببینید ما نمیخوایم بگیم حالا اون به هر حال اون روایت الان ابتداءا در کتاب عبدالله حسن در کتاب مرحوم ایسا قربل اسناد درم اون کتاب دیگرش کتاب بله قربل اسناد مرحوم همیری است و یکی هم تو آخر سرائر از کتاب بزنتی اون آخر سرائر که مال بزنتی نیست این روایت هم الان ما مشکل ثبوتی داریم یعنی هنوز نمیتونیم ما براحتی اثبات بکنیم که واقعا این تو کتاب علیرون جعفر بوده چون من دیروز مفصل نسخ کتاب علیرون جعفر این مفصل میگه مناسب بابه توضیح دادم و این رو الان فقط تو نسخه عبد الله نحسانی. وقتی که عبدالله الله نحسانی توصیق صریحی نداره جز اینکه آوا است، نه علی مجتبی، عبدالله الله نحسانی علی شاید از ضرر و عرفی بشه این قبول کرد چون خاندان علمی بودن و ایشون قوم آمده اومده برای قومی ها کتاب جذه رو نقل کردن. اما به هر حال به عنوان یک اعتماد کار مشکل می‌کنه. مخصوصا که اصلش در نسخه ای که مرحوم صاحب بهار به نحو رجاده. از کتاب علی بن جعفر در اختیارش بوده با اینکه این نسخه از همه نسخ آتش بیشتر بوده 400 تا روایت در اصول بزراد 60 تا دیگه تکرار نمیخواد بگم حتی در این نسخه نیامده بظافن به اینکه در نسخه مرحوم کلینی مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ توسی که این دو بزرگوار دو تا نسخه از این کتاب داشتن در اونجا هم نیامده لذا یک شواهد وضوح شواهد واضحی الان ما برای قبول این روایت نداریم بله من بگم این روایت اشتباه شده ما مشابه این رو داریم اما توی روغن که توش شمش افتاده که یوس وجب ها ولا یاکلها اونجا داریم مشابه این. حالا این با اون اشتباه شده ولی بگم اشتباه شده یک حکم رو اونجا داریم اما در میته ما نداریم در میته این حکم رو نداریم در این در اجزای حیوان این راجبی اینه اون چه که در این بحث خیلی جایی توجه بود که دیروز ما سابقهش رو عرض کردیم این بحث بود که متون روایاتی که ها یا ما نقل کردیم در این جهت مختلفه یک نواخ نیستن اهل سنت نقل نکرد ما مبین من نهین فهو میتون این نقل اهل سنت حالا این میته یک میته هم داره مسئله هم داره میته هم داره میتون هم داره حالا این میته چه آثاری داره لا توبا مثلا لا توکر لا طلبست مثلا میمان در این جهد شبات احل سنت ساکت را احل فقط داره میته یا میتون یا میتون در روایات که ما داریم از کتاب علیه این طور میتون لا ینتفع به که خصوص عقل نیست اکل و شعر و بقیه اکل و انتفاعت دیگه کوشیدن این هم داریم که جایز نیست لایون تفعب از یک کتاب علی در کتاب دائم نقل کرده در همین مورد که دیروز خوندیم این عبارتش رو اون لایو کل معلوم میشه که نسخ مختلف بوده این نهی نسخ نقل ها مختلف بوده و یه روز کردیم احتمال میدیم که علت اختلاف نقل هم اختلاف اون کتاب علی باشه از کردیم با شواهدی که ما در اختیار داریم دو کتاب به نام کتاب علی در فرهنگ مجموعه میراس های اسلامی وجود داره یکیش همون جامعه است اون جامعه اینه از جامعه چون اونه که مسلمه برای ازداری میشه اثبات کرد که کتابی به نام جف که چون جف خود بوزه یک ساله است یا پوست بوزه شاید جفع اسم کتاب نباشه جفع مثلا پوستی بوده که حضرز روش نوشتن به احتمال دیگه ولیکن اونی که اسم کتابه الجامعه است، اونی که حضرز داشتن الجامعه اینه از صحیف اطول جامعه و کردم من این بحثی طولانی داره از چند زادیه یکی این که از اواخر قرن اول و اواخر قرن دوم ادهی از فرزندان نوهای صحابه کتابهایی رو به جدشون نسبت می دادن. که اشهر اونها پیش اهل سنت رساله بوده که نره پسری از پسر عبدالله نعمر به جدش عبدالله نعمر نسبت می داده. این عبدالله پسر امرعاست معروفه یعنی که ایشونه سلاصه عبدالله ابن عباس هست عبدالله ابن است عبدالله و عبدالله ابن این عبدالله همه آس به خلاف پدرش اهل اون سیاست و اون کارانه نبوده. بیشتر اهل خود علم و یک رساله ای رو ایشون نوشته بوده و تاریخ هم داره دار کرده که از سال هشتم هجری از ماه رمضان سال هشتم هجری ایشون شروع کرده از اقوال رسولال رو ذرس میکرده می نوشته اجازه گرفته از پیغمبر اکرم که من مخامون چیلی شما می فرماید بنویستم ببینیم. این اون دیگه موارزه میکنه میگه ننویسیشون براخره بشره ممکنه که عصبانی بشه مثلا تند بشه حرفای مختلف بزنه، گونگوناگون بزنه. هزارتا نه تو کار نباشه بنویسید. من بشر هستم و تنده میشم، لکن لا یخرج منھا الا الحق. از این زبان من و دهان من غیر از حق خارج نمیشه. از ماه رمضان سال هشتم هجری که سال فتح مکه است، این آقا عبدالله ابن امر معروف احادیسی رو جمع میکنه هزار و قرده چه میدن اخیرن سنیه ها یک جا جمع کردن. اله آن در کتابهاشون هاشو متفره بوده کتاب این نوی او به نام امر ابن شعیب این کتاب رو در میاره و مشهور میشه از اون زمان این امر ابن شعیب معاصر حضرت باغر و حضرت صادقه و مثل اون جد علاش امرعاست از اون مبغزین امیر بسیار مرد خبیسی امر ابن شعیب این این رساله رو که میگه جدن عبدالله نوشه به نام الرسالت و صادقه من این کلمه جامعه اون رساله‌ای رو که اون نوشته اسمش الرسالت و صادقه این رو پخش میکنه البته فرزندان دیگه سالم هستن دیگه من وقت اون بحثو میشنم خیلی پیران به بحث هایی داشتیم شعب اونجا توضیحاتش میداریش انز و در مقابل حضرت باغر یعنی ما این مطلب رو از حضرت سجاد نداریم اشتباه نشه حضرت باغر سامالاله اولین امامی هستن که این کتاب رو به عنوان الرسالت الجامعه یا الجامعه اختصارا الجامعه من در اون بحث کردیم اونی که مسلم به امیرمون نسبت داده میشه همین دوتاست یکی الجفر یکی الجامعه بیشتر شوشن نیست مثل چیه این ناسخبتارد و جفر عوید و جفر احنارازی هست این همه روچند کتاب مستبدی باشه توضیحش در جای خودش الان این که ایفه یک چیزی که به عویر نسبت داده شده که اولین نسبتش هم ترسته هست باغره و ما در میان اصحاب خواستشون یک تکوتوکی داریم که کل کتاب رو دیدن مثل دست امام یکی زراره هست مثلا بقیهش زاهن حالت نقل داره. یک کتاب علییم که در کتاب علییه یا علجمه هر دو یک معناست. دو تا معنا نیستن این یک نوشتاری بوده، یک توضیح هم. به شکل این نوشتار که یا همین کتاب های زمان ما بوده، ورق ورق بوده، یا به شکل توماری بوده، جمع میکنن. زواهره عبارات را از که به شکل توماری نبوده، ورق بوده کتاب ورق میگه. شما که ورق ورق و خوندم کتابو. الانگه به ما کام این بحثات چون تو دار نیست و نمیخوام وارد بشن این رساله از خسارس شیلیه که علمش در اختیار اهل بیت بوده چه کسانی که به اهل بیت کار نداشتن مثل خلافای بنی امهیه مثلا نمونسه چه اونهایی که به اهل بیت کار داشتن و <تصفح> دا خودشون رو معارض میدونستن فسن مثل زیدی ها مثل عبلالله مس مثل پسرش محمد نفس زکیه با اول چه اونهایی که کار داشتن اینها از این کتاب محروم بودن و اهل بیت یکی از عدله به اسلام ولایت خودشون و حجت خودشون رو ثبوت این کتاب می دونستن این یعنی این کتاب متوفر در اختیار همه مردم نبوده اینطور نبوده که همه از اون مطلع باشن گاهی ازش تحریف شده به کتاب علی باید باید به جامعه این باجه به این کتاب و یه دفعه بیام عرض کردم فا اونجایی که ما میدونیم حالا اگر چیز دیگری هست نمیدونیم که به ما نرسیده اولین امامی که اسم این کتاب رو برده برای ایان امام باقی و اولین امامی که اسم این کتاب رو در یک سنه در در کل دنیای اسلام نه برای شیعیان در یک کل دنیای اسلام برده حضرت وزا سلام الله علیه چون در احنامه این که معمون برای حضرت نمیدیسه و ایشونو میکنه چون این عهد به خط معمون که به عنوان حکم حکومتی بود و نامه رسمی دولت بود دربار بوده این در تمام جهان اسلام استنساخ شد و روی منابر خونده شد چون تعین ولی بود دیگه در این نامه عذر معمون میخواست در یه عهد خودشو معیم بکن تمام عهمه جمعه و جماعت و ادارات و مراکز اداری و رسمی و غیر رسمی این نامه در همه دنیا اسلام قرارت شد متن نوشته معمون و پشت این نوشته جوابی که حضرت رزا دادم این نوشته و جواب به متن کامل نسخه اصلی خودش در اختیار مرحوم اربلی صاحب کتاب کشفر غمه قرار گرفته بخون این کتاب کشفر جلد دومش مار مروض و حضرت میگه من این نسخه رو پیدا کردم حدود 400 سال انجر تاریخی بیش از 400 سال بعد از اون نوشته خود اصلیه حالا هنوز زمان بنی عباس بود حالا چه پیدا کرده کج به بنی عباس باشم اینجا ما زنان می کنیم دارم دروغ نشه در اون جا وقتی که حضرت رزایشون میگه که روی نامه کلمات معموم بود هم حضرت رزا به خط خودشون جوابی دادن به اون نصب ایشان مانا ولی اه بعد از این که حضرت میپنید که این به اسطلاح خودشون عبدالله المعموم اراده به که من ولی اه باشم الا ان الجفر والجامعه یدولان علا خلاف داده این هست چنین <تصفيق> خیلی عجیبه ما قبل از این در دنیای اسلام نه در دنیای شیعه در دنیای شیعه از زمان ما باقیه هر سالهای سد یا حتی قبل از سده اما در دنیای اسلام صد سال بعد از اینه که این نامه رسمی و حکومتی که در تمام دنیای اسلام قرائت شد و خونده شد برای منابر و غیر منابر و ادوات دولتی ها در اونجا حضرت می‌فرمائند این کار نمیشه جخل جامعه ادلال میگه که این کار نمیشه ولی قرار نشد دیگه از به خلافت نرسیدند. خاصن اشاره بکنن که این ولایت اهدی به جایی اما این که شما این کتاب علی از خصائص اهل بیت. در مقابل این از کردین در زمان خود امیرمون و بعد از در خود کوفه در درجه اول و بعد منتشر شد. اونجا هم یک کتاب علی منتشر شد. این اشتباه نشه لطفاً. اون کتاب علی که منتشر شد او در دید با اهل به جایی نداره اما منتشر شد اسم اون کتاب هم از سنن و غذای و اول احکام حالا با یک ترجمه و تخیر اسمش هم واضحه الا اینکه مؤلف معلف کتاب محل اختلاف شد به ابو رافع نسبت داده شده فتصاحب پسرش الله نسبت داده شده با خود army المؤمنین نسبت داده شده به, به حارث بن عبدالله عاران همدانی نسب الی اخریجار من میخوام اردون بحثش بشم چون ما مفصل بررسی کردیم عده از افراد این کتاب به نسبت داده شده و ما در میان میراث های اسلامی دو تا کتاب علویین اشتباه نشه اینه دی که ما الان اینجا در روایت کاهلی داریم اون کتاب جامعه است در اختیار بوده و اون ارزش داره اونی که الان در دعایم الاسلام داره از همون کتاب سنن و القضای و احکامه از کردم من در محل خودش صاحب دائم کتابی و نامی ایزه داره که تازگی چاپ شده صاحب هم نصیح ازش مدید در اونجا لاقل خود من دو مورد دیدم حالا شده هم بیشتر باشه من همه کتاب استکسان کتابو کتاب <تصفح> موضوع نکردم لازم نیست استفسارش دو مورد دیدم که ایشان سند نقد میکنه و سند به عین همون سند نجاشی به کتاب سلاله القضاء الاحکام که نشون میده اون نسخه دوم کتاب علی لاختيار ایشون بوده و ما عرض کردیم شواهدی هم داریم در اختیار زیدیها هم بوده پس غیر از مذهب امامیه دو تا از مذاهب شیعه که هر دو حرف حسن یکی زیدی ها و یکی اسماعیلی ها اینا این کتاب داره اون کتاب پس بنابراین روشن شد که سه مذهب مهم شیعه که الان وجود داره وجود خارج ده یکیش اگر از کتاب علی نقل بکنه اون کتابی است که الان پیش بقیعت الله دو تاش از اون کتاب بازاری علی نعر کردیم از سنن القضاء راهف و این در که کنفه مشهور بوده شواهد نشون بوده بعدها اصلا در جهان اسلام رواج کرده کرده و ارز کردیم مثلا مثل مرحوم مرحوم حالا مرحوم یا غیر مرحوم مثل دائم الاسلام که بین مرحوم کلینی و مرحوم صدوقه ایشون کتاب پیشش بوده لکن نه کلینی از این کتاب نه هم پرنسد نه هم یک از اصحاب ما اینو خوب بپس بکنیم الان ما در کتاب هایی که داریم سند دارال یک مرسلی باشه جای خودش هیچ یک از اصحاب ما از اون کتاب نقل نکرده به سند اون کتاب بله من از کردم این کتاب محمد بن قیس انوی جعفر سی قضا علی احتمال همون کتابه لکی اگه دقت کنید محمد بن قیس توسط امام باغیر نقل اون احتمالاً به احتمال بسیار بسیار ردی اذه از روایی که الان به نام سکونی هست از همون کتاب باشه احتمالاً ادیه از روید که بنان صحیبت و رضا هست خلا همه شه احتمالات البته احتمالات هست اما با اون سند نقل نشده اشتباه نشد ما الان در روایات خودمون از قضای و سنان و الاحکام به سندی که در فهارس ما آمده منتحیبش به علی نرمی تارب نداریم این هم یه چیز قریبیه اسمایلی ها, ها دارن زیدی ها دارن ولی لذا بعید نیست ولی علم و اندازه این مقدمات احس کردن در نسخهی که در اون کتاب جامعه که در اختیار امام صادق بوده فی کتاب علیه لا میتون میتون لایون تصعبه لیکن در کتاب دائم الاسلام این عبارت بوده که لایون کرد لیکن خب احتماله حالا ما فعلا که یقین نداریم اما در میان تراث زیدیه از کردیم از میراس های زیدی از های نسبتاً های انسان خوبشون البته ایشون یک کمی تندروب هست رو که من با خصوص امامیه بده به من اهل بیت تحانت میکنه باقی نظر از این کارهای ناشایستی ایشان این کتابش خوبه کتابی داره نام الاحکام این شخصی از فادات حسانی به نام الامام الحادی پیش اونها تقلیبا معاصر امام افکری ما ایشون معاصر دولت زیدی ها در یمند و الان هم زیدی هایی که الان ما در یمن داریم همین الان که در خدمتون هستیم همینه که این آقاینی که الان دارم با دولت می جنگن در یمن اینا هادوی هستن اینا شیعه ای اسماعشه نیستن شیعه هادوی زیدی هادوی هستن مرادشون از هادوی اطباع این شخص بعضیا، ها مثلا در این کتاب فرسان بحر و زخار میگه درقال امامول حادثات ما هادوی امامول این امام هادی با اون امام هادی خیلی با تفارض. خاصن که علی امام الهادی یحیی بن حسین را کی فلان الحجون مسندا بر میگاد اثرش به ماهاتنه مشکبا این امام الهادی. چرا روش... لغب... در امام امام هادی خوب خود ائمه دیگه لقب گذاشتن مثلا مسعود روانقی مأمون رشید اینطوری از اون زمان. یه امام خود خودشون امام تعبیر می‌کردن میان میخواد امام منصور. در اصلش لقب هادی مثال امام الهادی مهدی موقتدی می‌گم المتوکل علی الله این بالله الاخر در این جای یک جریشم داره حالا من پیدا نکردم الان چون سرعت نگاه کردم من جمله در باب به سهمی معقولات و مشروبات و ملبوسات این کتاب چاپ جید هم شده به نام احکام در دو جلد یحیی حسین ابن قاسم ابراهیم اسماعیل بن ابراهیم حسن ابن حسن, ابن حسن ابن علی بن این از 사ادات طواتواییص به اصطلاح امروزیه که دقیقاً واقعاً میگن طواتواییه ایشون از طواته. ای. اصولا در یمن الان بیشتر 사ادات ایشون ها حسنی هستن. خود زیدیه غالباً حسنی بودن. الان در خود یمن فعلی ما حسینی داریم کمند. همین آیش الان قیام کرده و قدامون هست. قبلاً شیخ تو دران خودش هم داره مبارزه میکنه و ایام مبارزه خودش از 사ادات حسنی هستند. در اینجا داره در جلد دو صفحه 613 چه دیگه هم داره؟ كل ما حرم الله و اکله من ذالك و منذالک فلا يجوز لباس و جلودها ولد انتفاضها ولد به من امورها حالا آیا اینم شبیه این عبارت که اگر خدا یه چیز رو تحریم کرد یه همش حرامه اكلش و لبسش و انتفاضش و همه از کردم این رعی در میان اهل سنت هم هست حالا اهل سنت چون باز دومتن ما تکرار میکنیم مناشی اشعر ساریم که اده از اهل سنت هم جمعی انتفاعات رو به میته رو جایز نمیدونه صفحه چهار سال در جلد دو. در قرار حتی اده از اهل سنت اصلا این بحث دارن بیگه نمیخواد بخونن عبادشون آیا میشه به تقداد یا نه مثلا مرگی میته شده مرد خودش آیا اون رو چون انتفاعات جایدونه که بین انتفاعات جایدونه نیست یا بوستن بزقاله چیزی مرد آیا اون میشه به دواب داد به کلاب داد یا نه حتی تا این حد انتفاع رو هم خیال نه رو انتفاع مرد لباس و پوشوندن و یا به قول مرموم شخص خد ساقیه مثلا دلو آر میخوان و هیکل یک مثلا یک پیکره یا یک جسد مثلا جسد مثلا دوستاند مرده رو می‌ذارن نه اون که جای خودش اصلا ایده ایشون کردن آیا به حیوان هم شده یا نه که من اصلا در زمان ما که الان هستیم و قانون هم همینطوره این مرداری‌هاشون مرغاشون می‌میرن حق نداره تا به حیوان بدن باید با بسوزونن با نفت چاله بسوزونن آیا این نمی‌شه میگم این بحث الان قانون ما داریم اما این قبل از اینکه زمان ما بشه در چه آمده در 1200 سال قبل در مسادر قدیم احر سنت حتی به این بحثم آمده که آیا میکه رو میشه به سگ داد یا در اون زمان خود اینه خیلی متعارف بود برایشون باز و شکارتی میکردن با باز آیا میشه به باز داد حیوانی مرزه که کنیم گوشته شده به این حیوان بازی که دارن اون بخوره ولله انتصاب به شی این من امورها بعد داره وحده سنه عبی که اون حسین باشه عبی انهو سوئله عن جلود نمور این جلود نمور رو هم یا جلود سبا رو هم من بعد انشالله متعرز میشن فقال لا تلبس جلود ما حرم الله و اکله ولا جلد دو بقه عملا میاد و معلوم میشه که زیدیها ها هم مثل امامیه اون دباغ توهوره ها رو قبول ندارن ولا يحل من الميتة جلد ولا قرن ولا احمر ولا عصبان قال يحيى ابن الحسين بلى ولا بأس بلباس فرا الغنم كوستاء الغنسان الا ما كان من جلد ميتة فانه لا يجوز ولا يحل الالتفاف بشيء من ها چون اونا اون ارزش کردن جلود سبا چون بحثی هست اصلا سبا تصفیه قبول میکنن اون حساب دیگر داره جلود سبا واقعی به جلود میته نداره ها اون کسانی که میگن سبا قابل تصفیه واقعی داره ولی اون اصلا حساب خودش داره او اصلا چون قابل میته قابل ای که از حیوان در حال زنده بودن جدا میکنن اصلا قابل تصفیه نیست اینم در حیوان حلال اخله لیکن قابل ہے۔ جلود سبا هم نفشال این واژه که اصلا چون قابل تسییر نیستن لذا اصلا جدولون حساب دیگه ای داره. من برادران حساب بیمه راد اینه. ما هم تو روایات ما میاد تا یا سبا رو چیکار بکنیم؟ خواهد آمد چون این روایات ما هم داره من فعلا عبارات ایشون رو خب تا اینجا به اذن الله تعالی جنب بکنیم بحث رو در این اجزاء حیوان سه تا دو تا رأی دیده شد در میان سه فرقه مهم شیعه یکی راجب به اصطلاح راجب سونیا که میتتون راجب شیعه یکی لایوکل بود که در کتاب اسماعیلی آباده و در این روایت منصور به حضرت منصب نجعفر و یکی لایون تفعبه بود که در کتاب زیدیه ها بود و حضرت ساله سامالاله از کتاب علیه مقرفه بودن این خلاصه این بر تا بینیم فردا قسمت های دیگری دیگر اینکه دیگر به چه حضرتون رسال الله دوست. آمانجی. من از که در بشه. در همین کتاب قربان استاد دیگه دستور آمانجی. رو تماسیش شده ولی. خب من که وسط اون خاص باشه. من تا کنج اینکه نه <laughs> الان